بینه به به خانم آقایون دختر خانم‌ها آقا به آقایان شنوندگان رادیو فردای با برنامه ایسکا پنج شنبه حتما خیلی از شما میدونید که مکتب فیلمسازی اسقر آقای فرهادی مبتنی بر پایان باز میدونید دیگه بلدی دیگه پایان باز یعنی پایان وا میذاره همینجوری شما خودت تصور کنی فکر کنی که چه جوری میشه چه اتفاقی میاد اما مکتب عشق ما ها به جای اینکه باز باشه شاده یعنی چی همو هپی اندینگ یعنی شاده تهش یعنی ما ایرانی ها حتی می با تعطیلات عید خداحافظی هم بکنیم سعی می کنیم پایان شادی داشته باشه اینه که می گن سیزده بدر حتی بعضی از عزیزان سعی میکنن از این پایان شاد یا آخر و عاقبتی هم برای اعضای خانواده فراهم کنن اینه که یهو مثلا میبینی مادر خانواده یعق دخترش گرفته داره کشون کشون تو روز سیزده بدر میبرتش سبزه گره بزنه تا چی بشه تا بشه مساق سیزده بدر سال دگر خونه شوهر مثلا این چیزایی که میگن قدیمی ها دختر خانواده هم حالا اگه به این چیزها اعتقادی نداشته باشه گره ها رو بلقه میزنه علکی که مثلا من کاری کردم شل میزنه و اینا مامانش بعدم هم میار گره میکنه حالا این که از لای این گره های کور و ناکوری که دوستان میزنن چجوری من نمیدونم شوهر در میاد و اصلا چرا باید شوهر در بیاد هنوز علم چیزی ثابت نکرده آیا با این گره ها من نمیدونم مثلا شوهر گره میخوره به دختر اینا یا من نمیدونم چی میشه ولی برحال دیگه خانواده های دختردار ایرانی هرچی را از دست بدن معمولا اون گره های آخر سر تو سیزه بدن و اینا از دست نمیدن حالا بعضی هم حیبونکی ها اینقدر بختشون چه بسید چند تا شاخم گره بزنن تا کار از نکنه. هلا بعضی دیگه هم هستن خیلی دسته جمعی میرن سیزده به در خیلی یعنی مورد بوده حتی ای دیدنی تو 13 به در به جا آوردن حسش اینه که نه از کس مهمون کسی نیست همه مهمون طبیعتن دیگه اینه که دسته جمعی عنایت میکنن به طبیعت حتی مشاهده شده مثلا رفت یه پارکی چیزی 13 رو به در کنی میبینی کلا همه مناطق قابل سیزده به در کردن پارک توسط یک فامیل اشغال شده بس که میخوان دور هم باشن تو این روز خاص یعنی میخوام بگم کاروان اتوبوسی مینیبوسی را میندازن بعضیا تو سیزده به درا انقدر میخوان همشون با هم باشن ماشاءالله بعضی فامیل ها یعنی ماشاءالله باز بالای 100 نفر دیویس نفر از صبح سیزده به در اصلا با بغز از خواب بیدار میشن جوری که نگران میشی میبینیشون میگه چی شده اتفاقی افتاده کسی مریض شده میگه نه بابا ازا گرفتم و فردا چجوری برم سر کار یا برم دانشگاه یعنی اصلا انگار نه انگار که تو ایدو مخلفاتش روزی تعطیل بوده ها نه الان ازا داره که چرا تموم شد میدونید که اصولا ما ایرانی همیشه دو مدل تعتیلی احتیاج داریم نیازمونه یکی تعتیلی که خب برحال و اصل ما اسمش تعتیلیه مثل همین عید نوروز یکی هم تعتیلی که توش بتونیم خودمونو یواش یواش آماده کنیم برای پایان تعتیلات اینه که سالهایی بوده که مثلا سیزده بدر افتاده چهارشنبه خب طبیعتا تعطیلات تا دو روز بعدش کش اومده پنجشنبه جمعه خرد و تنگش اون دو روز بعدش این مقام و منزلتش به جان خودم از اون 15 روز قبلش بیشتر بوده که کمتر نبوده باور کنید یعنی یکی از دلایل این که ما ایرانی‌ها میزان کار مفید سالانمون میگن چند ساعت بیشتر نیست همینه که سال رو با این تعطیلات مرحله‌ای شروع می‌کنیم دیگه تا آخرش همجوری تعطیل می‌بینیم جلو دیگه بل. یه دسته دیگه هم هستن 13 فروردین و 14 فروردین و 12 فروردین اصلا 15 دی تو بگو اصلا 12 مرداد اصلا فرقی براشون نمیکنه بهشون میگی با 13 بدر پاشیم بزنیم بیرون میگن که چی بشون وقت میگه خب روز طبیعت دیگه بعد بری بیرون میریم میگن نحسی 13 رو به در کنیم و دوره هم و اینا آخرین روزه و فلان و اینا دیگه جوابتون نمیده پتو رو, رو روی خود کشیده غلط دیگری زده اینا هیچی رو با افتادن و قول جوونان جوونک ها لش کردن و اینا عوض نمی کنن خودتونو خودتون رو برای متقاعد کردنشون خسته نکنید بخواب آم بخواب. بخواب. دسته دیگه هم داریم اونایی یعنی که کلن تو راه از بس که بد موقع را می افتن اینا همش تو راهن هن یعنی از اول اید می از اصفهان برن مشهد چهار روز تو راهن از بس که ترافیکه بعد میگن از مشهد را میافتیم میریم سیزده بدر رو تو دامنه‌های دماوند اتراق میکنیم، اما می‌بینی روز سیزده بدر 50 کیلومتر بیشتر از مشهد دور نشده از بس که ترافیکه همینج آروم آرومم چریک لاک‌پشتو دارم میرم اینه که مجبورن سیزده بدر رو تو ترافیک سر کنن هم که خوش بگذره بهشون ولی هنوز تا دیر نشده هنوز سیزده نیامده و اینا میتونین هم وان که تو ترافیک نمونی اینا ولی حتی اگه تو ترافیک هم موندین حتی اگه تو ترافیک هم هستین مهم نیست تکون بده آقا تکون بده خانون مهم اینه که تکون بدی همین راه که میری تکون بده بله همین که ایشون میگه تکون بده لایک بگیری تکون بده آخه مگه خوابت میاد تکون بده تکون بده کامنت بیاد صدای برگاه انگاه به هشته کنار دریا نگاه به بلش به و خونه رو زشته یا با هم بریم یه جای دنچ پوله تکو برید عاشا میزنیم یه رول ریز بشینیم تو ماشین ریلکس بریم شمال بجا چک و ونیز تو شهر میبینیم ای بابا باس ولی باس پیکا و بالاست آره دیگه دور زمان عوض شده همه اشغال باس کل شهر اینجا میگردن به یه قاتل بوروسلی باقی هم تو کروفر الان تکم بدی تو بورسی خانمی که میگه پلنگر روزو روز پیچفنگه ز املامات صلی چرا فکر کنه خشنگه؟ میگه شب خونه دوست باشه ولی نمیتونه سو بازد پاشه. اول بوش تو و آخر مپی کوتاجه. تکمیده خرم امین جوری راه کمیری تکمیده حاتی تکمیده لایح بگیری تکمیده آخه مگه خوابت میاد تکمیده دو خی اول عداست ولی بدون تش داده اینو همه ده هفت دادم ولی سایزشون اچ داده یه شیشه را نصرفه داره میره بازم هم کسک همه پوزیشن ها را ولده به تیاد میره با رسم شکل برو برو. من نمیخوام سیا میا تو سفید مفیدی بیا بیا خانو یه دیگه, دیگه آرش خاص شده کن میده باسه هیپپپیا الان براشته برقا چطا خوله ولی رو شرقا که بخوره وری ریوا میشه که باید دو چشو ب ماده د کلره مار جادو داشت ارصخ و تو همارون هم باش سلامتی زیر زمین آجی ولی تختور خلت باش رسیدین 96 موزیکا دیدی که عمل کیش تو همعملگه واله میکننی فقط تتون بده کمرا ایش تکون بده. تو بغل خب من خب منم که میدونم من بله فله با میگه جوزو بچو اینقدر نسخه کمونده منم بزنم تو زفلش جالب رامه میگه همه جا دائم باهام دوست میگه همیشه میخواد که دنبال سرد واق بابامه میگه آقا تو حال خوشی گفت کردی با من بری پای تو شب با یه قیافه میخوای مال تو شب نترسم ببینم خواب تو شب لندن دونالامین درمغ عملی منم روی ذوق داری خانم مصابت کنی که طلا بدم به سیوی جز رای پاهات همون جری که دیدی تو انسانیت هم باش مثل همون غیری که میدی په بخیاله اینا بله تو باد خدا که همه چی به همون داد حتی اگه صفر پرنی خوبیشی نباشه دلمون شاد تکون بده همین راه که میری تکون بده لایک بگیری تکون آخه مگه خوابت میاد تکون بده ready? And I hope I'm fucking ready, ready. ready. ready. ready. ready. ready. این که شنیدید اپیکور بند تکون بده هنوز تکون بده هنو مونده یه ریزه دیگه تکون بده آها متفقین تهران نویدو چندیم الان نویدو دیگه نویدو شیشیم مبارکه